دیشب فیلم جنگ صدام علیه ایران را دیدم. چطور بود؟ خیلی جالب بود. فکر نمی کردم اینطور باشد. خورم شهر کاملا خراب شده بود. بله. اراغیها خورم شهر را اشغال کردند و خانه های مردم و تأسیسات شهر را نابود کردند. ایرانی ها چگونه توانستند خوررمشه را از نیروهای اشغالگر پس بگیرند؟ مردم به کمک ارتش و سپاه رفتند و پس از یک نبرد دلیران در برابر نیروهای ارتش صدام خوررمشه را از دست متجاوزان آزاد کردند. راستی جنگ چند سال طول کشید؟ دفاع مقدس مردم ایران، هشت سال طول کشید حتما ایرانی ها روزهای سختی را پشت سر گذاشته بله کشورهای اروپایی و آمریکا به عراق کمک های تسلیحاتی و مالی می کردند. اما ایران تنها بود چه چیزی باعث می شد ایرانی ها نامید نشوند؟ ایمان به خدا و رهبری امام خمینی خیلی مهم بود به نظر من، عشق به ایران را نباید فراموش کنیم ایرانی ها عاشق کشورشون هستند